شنوندگان کانال هزار افسان از این کتاب زیبا داستان خورشیدبانو بانو رو تقدیمتون میکنم امیدوارم خوشتون بیاد و تا آخر داستان همراه من باشید رقابت بین پادشاهان و حاکمان کشورهای گوناگون ره سفار شدن یکی از این حاکمان یا پسر او برای دستیافتن به مال و دختر شهر یا کشور رقیب از مضمون هایی است که در افسانهها، ها بارها و با بارها تکرار شده است گرچه یکی از این کارکردهای نقل افسانه ها گذراندن اوقات فراغت و شب اما در پس آن انتقادی بر روابط و جب حاکم بر دربارها و تفکر حاکمان است که چگونه مسائل حیاتی مردم را فدای هوس خود می کند. افسانه خورشید بانو تلخیص بازنویسی شده از یک افسانه کرمانی به نام مقل دختر است که در کتاب چهارده افسانه روستایی از مردم کرمان آمده است که در جای خود آن را می یکی بود یکی نبود غیر از خدا هیچکی نبود یه شبی مردی دختر زیبایی رو تو خواب خودش می بینه. یه دل دلاشق جمال دختره میشه. وقتی از خواب بیدار میشه دست از خونه و زندگیش میکشه و راهی بیابو میشه و میره خلاصه چهار سال از این شهر به اون شهر میره تا شاید گم شده ی خودش پیدا کنه اما از بخت بعد دختری رو که تو خوابیده بود و پیدا نکرد آخرش ناامید و مایوس به خونه برگشت و توی خونه نشست این مرد پسر جوانی داشت که بسیار خوش بررو و خوش قد و قامت بود. که مکتب میرفت و شبیه هم اون خواب خودش دخته رو که چهار سال قبل پدرش تو خواب دیده بود و میبینه و آشق و بیغرارش میشه. صبح زود کیسه آزوقه و یکوزه آب برمیداره و لباس سفر رو میپوشه و میره و میره. تا میرسه به یه گله بز که مشغول چرا بودن این گله بز مال پدر خورشیدبانو یعنی همون دختری که تو خواب پدر و پسر اومده بود تعلق داشت وقتی پسر فهمید که اون گله مال پدر خوشید بانوه دو دوتار کوچیکی که پر شالش زده بود و به دستش گرفت و مشغول خوندن شعر و زدن دوتار شد وقتی که از خوندن و زدنش خسته شد، زیر درختی نشست و یک همینون و پنیر خورد و یه ذره آب نوشید و از اونجا دور شد تا رسید به یه گله میش. وقتی از چوپان سراغ گله رو گرفت، معلوم شد که اون گله هم مال پدر همون دختره. وقتی از گله میش میگذشت، یه گله گوزن بود، که اون گله هم مال پدر خورشیدبانو بود. پسر یکم کنار تخت سنگی نشست و خستگیش خستگیشو در کرد و دوباره راه افتاد و این سری راهو گم کرد و به بیراهه رفت و توی بیابونا چهل روز سرگردان بود. خوراکش ریشه و میوه ها و بوتاهای بیابونی بود. پسر شروع کرد به التماس خدا و گفت که خدایا تو راهو به من نشون بده یه و یه پیرمردی نورانی که خیزر بود برابرش ظاهر شد و دستشی گرفت و گفت جوان چشاتو ببند پسرم اطاعت کرد و وقتی اون پیرمرد گفت چشاتو باز کن پسرم چشاشو باز کرد و خودشو در دروازه شهری دید که خورشید بانو اونجا زندگی میکرد پسر همه که خواست داخل شهر بره چشمش به چهل تا دربیش خاکستر نشین افتاد پسر به اونا نزدیک شد و پرسید میشه به من بگید که چرا شما خاکستر نشین شدی؟ دربیش گفتند ما چهل درویش پسر چهل نفر از بزرگای شهرهای مختلفی. و چون آشق خورشید بانو شدیم به خاکستر نشستیم. پسر به اونا خندید و گروه داخل شهر وارد شد. و سراغ خونه ی پدر خورشیدبانو بانو رو گرفت و یک داخل خانه شد. اون شب شب جمعه بود و خورشیدبانو بانو رست داشت که شب های جمعه برای فاتح خونی به قبرستون بره. دختر به نوکرای خودش دستور داد که مادیانی رو حاضر کنند تا سوار بشه و بره بیرون. وقتی خواست سوار مادیان بشه چشمش به پسر افتاد و ازش پرسید کی هستی؟ به چه جورتی داخل امارات من شدی؟ پسر شرح حال خودش رو گفت و خرشید بانو دستش رو به گردن پسر انداخت و اونو بغل کرد و نوازش کرد و هر دو هم رو بوسیدند. اون وقت دختر گفت من برای فاتحه اهل قبور میرم اگه تو دوست داشته باشی میتونی بیای دختر از جلو راه افتاد و پسر پیاده با هم به قبرستون رفتن وقتی دروازه شهر بیرون رفتن چهل درویشم از جاشون بلند شدن و تبرو برداشتن و به جون پسر و تا میخورد اونو زدن. اونو خونی و مالی کردن و به یک گوشه انداختن پدر خورشید که از اونجا میگذشت بالای سر پسر رسید و سوال کرد چی شده؟ کی این جوانو به این روز انداخته؟ گفتن اون چهل در بیش نشین که عاشق دختر شمان. وقتی دیدن این جوان به دنبال اسب خورشید بانو راه افتاده روی سرش ریختن و تا میتونستن زدن. پدر خورشید هم به نوکراش دستور داد تا جوان زخمی رو به خونه ببرن و جراحتاشو مرهم بزارن و تا صبح نگهش دارن نصف شب وقتی جوان به هوش اومد بلند شد و به اتاق دختر رفت شمشیر برهنه رو کشید و بین خودش دختر قرار داد و خوابید صبح که شد دختر از خواب بلند شد و وقتی که اون وضعو دید پا به فرار گذاشت و به امارت دیگه ای رفت پسرم وقتی بیدار شد دخترو ندید، پاشد، پشت بام به پشت بام به دنبال اون رفت. وقتی به حیاتی که دختر در اونجا بود رسید، خورشید بانو که تمام جواهرات و تلاهای خودش و دور خودش جمع کرده بود و به دیوار تکیه داده بود و دید. پسر دوتارش رو از پرشال بیرون آورد و به زدن و خوندن اون مشغول شد. وقتی دختر چشمش به اون پسر افتاد از اون حیات به حیات دیگه ای رفت و ظرفی پر از هنا رو که خیست کرده بود و به دست و پاهاش مالید. پسرم از اون بام به بام دیگه ای رفت و چون دختر رو تو اون حال هنا گذاشتن دید باز شعرهای رو خوند. این خبر به گوش پدر دختر رسید و ناقراولا رو به دنبال پسر فرستادند تا دستگیرش کنند وقتی پسر رو دست بسته به حضورش آوردند و علت این سماجت رو از اون پرسیدند پسر گفت من چه با پررویی باشه چه به زور و چه یه روز باشه و چه صد روز آخر دخترتو صاحب میشم پدر دختر گفت عجب احمقی هستی که با دست خالی چنین هوایی به سر داری بدون که یه روز پیش راجع کشمیر به خاستگاری خورشید اومده و حالا هم رفته تا چهل روز دیگه با شیربه های کافی برگرده و دخترم رو با خودش ببره. اما اگه تو بتونی قبل از اون شیربه های دخترم رو فراهم کنی دختتر من مال تو میشه. وگرنه بعد چهل روز راجع کشمیر میاد و دخترو میبره. فعلا وقت تو تلف نکن و حرکت کن. پسر بلند شد و خداحافظی کرد و به سمت شهر خودش برگشت. وقتی پیش پدرش رسید گفت پدرجان تو چهار سال به جستجوی دختری که توی عالم خواب دیده بودی رفتی ولی اونو پیدا نکردی. اما من رفتم و اونو پیداش کردم. الان با شیربه های کافی به من بدی تا برم و اونو با خودم بیار. پدرش خندید و گفت عجب خیال خامی من پول و مال بدم تا بری دختر بر خودت بیاری نه خودت برو پول فرام کن پسر که این حرف رو شنید قهر کرد و از پیش پدرش رفت به راه بیابون رو گرفت و رفت و رفت تا به یه آبنباری رسید و کمی آب نوشید. از زور خستگی خوابید و به یه درختی تکیه کرد هنوز ساعتی نگذشته بود که صدای زنگ قافلهی از خواب بیدارش کرد و نگاه کرد دید های پدرش دارن نزدیک میشن. و صدای زنگ گوش آسمونو کر کرد. وقتی به کنار اون رسیدن پسر دید که بار تموم قاطرا سندوقای بزرگی از خوشحالی به اون نزدیک شد و جلوی قافره رو گرفت. قاصرجیا خواستند از دست اون خودشون خلاص کنند ولی پسر مهلت نداد کشیده محکمی رو به صورت سردسته اونا زد اونا چون دیدن که این, این کارو کرد سکوت کردند پسرم قاطار رو جلو انداخت و به سرعت به سمت شهر مشهوره به افتاد بعد از اینکه مسافتی رو رفتن پسر خواستو و داخل رو ببینه وقتی در یکی از اونها رو باز کرد، با کمال تعجب دید که خالی. سیلی دیگه رو به گوش چاپاردار باشی زد و از اونا جدا شد و راه بیابون رو گرفت و رفت. و به تنهایی دور شد. با خودش گفت اگه خدا بخواد خودش میده. اونقدر رفت, رفت رفت رفت تا شب رسید و ظلمت همه جا رو گرفت. اما پسر همونطور برا رفتنش ادامه میداد. تا اینکه به یه قافلهی رسید که به طرف کشمیر می رفتن. اهل قافله گفتند که قافل سالار ما راجع کشمیره که تازه خرشیدبان و عروسی کرده بود داره عروس خودشو به کشمیر می بره. پسر که این حرف و شنید شروع کرد به شعر خوندن تا صداش به گوش دختر برسه اما بشنوید از مادر راج کشمیر که چون دوست نداشت پسرش از شهر دیگه ای عروس بیاره کیلهی به کار برده بود تا وقتی خورشید بانو به کشمیر رسید از بین بره مادر راجه با کمک یه پیرزن جادوگر کمی عاجل فراهم کرده بود که به دختر بخورن و اونو مسموم کنن وقتی که دختر به شهر وارد شد قبل از اون که مادر راجع موفق بشه اون آجیلا رو به دختر بده و اون رو بکشه راجع بدونه اینکه بدونه سر وقت آجیلا رفت و همه رو توی جیب خودش ریخت بدونه دونه خورد و مدتی نگذش که زهرش اثر کرد و افتاد و مو مر. خبر مرگ راجع کشمی توی شهر بیچی. مردم گفتن عروس بدقدمی بوده که داماد قفلتن درگذشته و مرده. پسر که به دنبال قافله تا شهر کشمیر اومده بود وقتی این خبر رو شنید خوشحال شد و هر طوری که بود خودشو به پشت بوم خونه راجر راجه رسوند. وقتی خاطر جمع شد که دختر توی خونه است آهسته رفت پایین و خودشو به مادر راجه رسوند. بهش گفت این دختر رو من میشناسم. انقدر بد قدمه که تا حالا هفته شوهرشو کشته باید هرچه زودتر از این زند خلاص بشی اینو خونت بیرون کن تا بدبختی تازهی به سرت نیومده مادر راجع افتاد به دست پای پسر رو گفت اگه بتونی دختر رو ببری و برسونی به شهر خودشون خیلی ممنون میشه پسر گفت من با دست خالی چطور میتونم دختر مردم رو به شهرشون برسونم؟ مادر راج گفت: ولی من هرچی که پول بخوای بهت میدم به شرط اینکه هرچی زودتر از شر رنگ خلاص بشم این از خونه من دورش کنی. مقدور داد کیسه هزار سکه طلا برای پسر آوردن و وسایل سفر اونا رو فراهم کردن. خورشید بانو رو به دستش سپرد و روونه خونشون کرد پسر از بازار برد فروشا ادده قلام زرنگو و از بازار چفار فروشا یک کمی اسب خریداری کرد و با دم و دستگاه به طرف شهر خودشون حرکت کرد چند شبانه روز توی راه بودند تا به شهر خودشون رسیدند وقتی پدرش با خبر شد گفت پسری که تک و تنها با دست خالی شیربه های کافی فراهم کرده و با دختر عروسی کرده قابلیت اونم داره که تمام دارایی منو رو تصاحب کنه بعد از اون تموم خونه و زندگی و دارایش به اختیار پسرش گذاشت و خودش گوشه اختیار کرد و به عبادت خدا مشغول شد خورشید بانو افسانه های از روستایان ایران صفحه شش گردآورنده مرسده انتشارات پدیده چاپ اول 1347 آیا تا به حال آرزو کردین که به سرزمین های سهر را کنین؟ جایی که پری ها و کتول ها زندگی میکنن؟ کانال هزار افزان همون یک دنبالش یک دنبالش. جایی که